بالاخره جمعه رسید، همراه یک دنیا دلشوره که داشت مرا از پادر میآورد. هرچه به خانه مرتزا نزدیک می شدیم، رعشه قریب از ازتراب و دلهوره تنم را میلرزاند لرزند گوشهایم انگار اصلا حرفهای امیر و سرعی و مادر را نمی و چشمهایم سحر را که همیشه با دیدنش بیتاب می نمیدید. هر لحظه دلم میخواست در ماشین را باز کنم و فرار کنم. از یک طرف دلم میخواست بروم و ببینمش. از طرف دیگر میدیدم قدرت ندارم جلوی جمع با او رو میخواستم هر جوری هست ظاهرم را حفظ کنم و میترسیدم نتوانم. هشت سال بود سعی کرده بودم کسی نفهمد از درون چقدر شکست و خورد شدم. نگذاشته بودم کسی قرور مچاله شده و پرپر پر زدن دل بدبختم را ببیند و حالا میفهمیدم که بیشترین موفقیتم برای این بوده که با محمد روبرو نشده بودم. وقتی امیر زنگ در را فشار داد، رعشه چند برابر شد و بدنم یخزد. خدایا کمکم کن. در باز شد. فرزان و مرتزا روی گشاده پشت در بودند یک لحظه نفسم بالا آمد خدا را شویر پس او نیامده ولی همین که خواستم نفس راحتی بکشم صدایش توی حیاهوی سلام و که دیگران توی گوشم بچید از بین مرتزا و امیر که بر سر سبد گل بزرگی که دست امیر بود شوخه می کردند گذشت و گفت سلام مادرجون دوباره نفهمیدم چه مرگم شد. مادرم ما شوقش را نشان داد و در کمال تعجب دست کردن محمد انداخت و به گرمی همدیگر را بوسیدند. مادر درست مثل اینکه یکی از پسرهایش را بعد از سالها دیده باشد ذوق میکرد و محمد هم زوق زده بود. مادر در حالی که می خندید گفت: «چرا نگاه میکن؟ پسرمه بعد از اون؟ به من مهرمه بوی امیر خودم میده. محمد خندان دوباره خم شد و صورت مادر را بوسید و همون موقع بود که از فراز شانه مادر یک آن نگاهش به من افتاد نگاهی سرد و سخت که تا عمق وجودم را سوساند زود نگاه هم را دزدیدم و به خودم نهیب زدم پدبخت خودتو جمع کن محکم نگاهشو ندیدی؟ سرم را بالا گرفتم و سعی کردم دیگر نگاهم به او نیفتد با فرزانه دست دادم و روبوسی کردم و به تلافی بار قبل هرچه می توانستم مهربان و صمیمی برخورد کردم حالا دیگر خیالم راحت بود که همسر محمد نیست سعی می کردم رفتارم طبیعی باشد و خدا می داند که چقدر سخت بود طبیعی رفتار کردن و نادیده گرفتن او که همه یه وجودم به سمتش پرواز میکرد اما به خودم تشر زدم: نگاهش نگاهشو ندیدی در مقابل آنچه من از محمد و نگاههایش به خاطر داشتم آن نگاه مثل اعلان جنگ بود با بدبختی تلاش کردم حواسم را جمع کنم و همان موقع بود که تازه متوجه مرتضا شدم و بی اختیار گرم و و قرق حیرت سلام کردم. با تعجب به مرتزا خیره مانده بودم و از دیدن قیافش که زمین تا آسمان با گذشته فرق کرده بود و با موهایی که کمی ریخته بود به نظر جا افتاده تر از محمد می‌آمد. جا خورده گفتم چقدر عوض شدین؟ مرتزا خندان جواب داد اما شما اصلا فرقی نکردی؟ خداگاه از این حرف چقدر خوشحال شدم. همراه مرتزا و فرزانه به جای کنار مادر راهنمایی شدم. در حالی که محمد هم روی مبل کناری مادر بین امیر و مادر نشسته بود. سورایه هم کنار من نشست و فرزانه و مرتزا رو ما. امیر و مرتزا با سر و صدا شوخی میکردند و سورایه و فرزانه احوال پرسی و تعارف محمد هم با مادر گرم صحبت بود و این میان فقط من بودم که سرم را به سهر گرم کرده بودم تا به جلوی خودم را بگیرم و بی باشم. انگار چیزی مثل آهن رو قوی مرا به سمت محمد می و از اینکه که حس می‌کردم او آرام و بی تفاوت صحبت با مادر است و اصلا من را نمی بیند و وجودم را حس نمی کند عذاب می گشیدم. نمیدانم شاید توقع من زیاد بود و به اشتباه در انتظار همان نگاه ها و رفتارهای گذشته بودم و شاید به خاطر اعتش و کشش شدیدی که خودم نسبت به او داشتم رفتار عادی او به نظرم بیا اعتنای احمقانه بود ولی حقیقت داشت او را عاشق و بیقرار میخواستم حالا میفهمیدم که اشتباه میکردم که شب و روز دعا میکردم خدایا فقط ببینمش. چون حالا میدیدم دیدنش بدون داشتنش برایم چقدر کشنده است. قوقایی که توی وجود من بود با رفتار عادی و آرام او چقدر مقایر بود و چقدر عذابم میداد؟ احساس میکردم با بی و بیتوجهی میخواهد مرا کوچک کند. و بیشتر از این که آن روز جلوی مرتزاین ها حالم به هم خورد و گریه کرده بودم در رنج بودم و فکر می کردم مشتم پیش همه باز شده. نمیدانم شاید هم بی نبود نبود رفتارش معمولی بود و من انتظار بی جایی داشتم. به هر حال هرچه بود لحظه به لحظه اعصابم کفته تر می شد. همین موقع بود که چشمم به چشمهای فرزانه افتاد و به نظرم آمد با کنجکاوی نگاهم می کند. که شاید هم باز اشتباه از من بود که مثل گربه دزده فکر می کردم توجه همه به ما ماست برای اینکه سرم به چیزی گرم باشد از فرزانه خواستم که اگر عکسی از زری دارد برایم بیاورد وقتی ها را آورد ماتم برده بود اصلا باور نمی کردم زری در حالی که حیکلی تقریبا دو برابر گذشته ها پیدا کرده بود یا کاملا زنانه داشت و با دو پسری که در بغل گرفته بود با آن زری که در ذهن من بود زمین تا آسمان فرق داشت. دوتا پسرهایش سالار و سهند مثل سیبی بودند که از وسط با شوهرش نصف کرده باشند. خود مسعود هم تقریبا بیشتر موهایش ریخته بود و دیگر کاملا شبیه دکترا شده بود. چندتا تا عکس هم با محمد داشت که معلوم بود توی این چند سال محمد دو سه بار رفت انگلیس. از عکس‌های زری جالبتر اکس های فاطمه خانم بود که با یک پسر و دو دختر دو قلو کنار قیافه های بسیار شاد محترم خانم و حاجاقا انداخته بودند. پرسیدم بچای فاطمه خانم الان چند ساله هستن؟ فرزانه گفت دو هورا و هیوه شیش سالشونه و سه سال. مادر پرسید. هنوز اصفهان زندگی میکنه؟ فرزانه جواب داد. نه، الان چهار ساله که رفتن بهرین. هومن همونجا به دنیا اومده. بقیه عکس های عروسی خود فرزانه و مرتزا بود که مربوط به سه سال پیش بود. ولی محمد توی هیچ کدام از عکس ها نبود. فهمیدم آن موقع ایران نبوده پس کی آمده؟ یعنی بعد از این چند سال بار اول است که آمده اصلا تازه برگشته؟ خاشیکی درباره او حرف میزد یا از او سوال میکرد از فرزانه پرسیدم؟ چطور سریع حالا نیومده ایران؟ مرتزا به جای فرزان توضیح داد دو سال اول که داشت زبان میخوند و اقامتش درست نشده بود بعدم که حامل شد و قرار شد وقتی بچه بزرگتر شد بیاد اما تا سالار خاصی خورده بزرگتر بشه دوباره زری خانم حامل شد و مادر رفت اونجا امسالم که قرار بود به خاطر قلب آقاجون بیاد بازم قرار شد مادرینا و خلاصو فکر کنم دیگه همون بمونه یه دفعه درس شوهرش که تموم بشه با هم بیاد و در حالی که با خنده به محمد اشاره میکرد گفت خونواده ای ما اینجوری دیگه، رفتنشون با خودشونه، برگشتشون با خدا مادر حال مهدی را پرسید مرتزا گفت ای بابا، اونا وقتی که ایران بودن کسی خبر از حالشون نداشت مادر با تعجب گفت مگه حالا کجا هستن؟ شش هفت ساله رفتن کانادا، پیش فامیله زنش. مادر آهی از ته دل کشید و سری تکان داد و گفت بیچاره محترم خانم چقدر توی این سالها اتفاقهای جور و جور افتاده بود صحبت به پدرم و خانم جون کشید و اظهار تحصف مرتزای که دنبالش باز محمد با مادر هم صحبت شد و بعد توی چند لحظهی که سکوت شد محمد با خنده و خوشرویی از سرایه پرسید خوب، حالا تو بگو چی شد با جماعت پسر را آشتی کردی؟ هنوز شنیدن صدایش برای مثل آهنگی زیبا دوست داشتنی ودلشیم بود. فکر کردم تون صدایش عوض که نشده هیچ گرم تر و گیراتر از گذشتهها مرا مجذوب می کندند سریا با خنده گفت آشتی نکردم یه خوبشونو سوا کردم همین امیر قهقه زنان گفت <تصفيق> همش حرف بود برای رنگ کردن من تو چرا انقدر صادهای میخواست منو گول بزنه که زد امیر و محمد میگفتند و سریا جواب میداد و همه میخندیدند این میان هر بار فرزانه یا مرتضا با من حرف میزدند محمد رویش به سمت مادر یا امیر بود و من که فکر میکردم مخصوصا این رفتار را میکند داشتم دق میکردم راحت حرف میزد، شوخی میکرد گهگاه در پذیرایی به مرتزا و فرزانه کمک میکرد ولی انگار اصلا مرا نمیدید درست مثل اینکه من اصلا آنجا نبودم و این وجودم را از تحقیر و توهین و زجر پر میکرد اعترافش سخت بود ولی حقیقت داشت. در برابر او دوباره همان مهنازه هشت سال پیش شده بودم. محتاج نوازش و مهر و نگاه های او. محتاج تکیه کردن به سینه فراخش و حس کردن گرمای آرامش بخش دستهایش. در مقابل آتشی که وجود مرا می سوزند رفتار او آب یخی بود که احسابم را مختل میکرد و از خودم و وضعی که داشتم بیزار ذره زر زره تحملم تمام شد و از اینکه آمده بودم بینهایت پشیمان بودم قمی سنگین به دلم چنگ می زد و احساس تلخی از حقارت و کوچک شدن به من دست می داد بی اختیار اخمهایم لحظه به لحظه بیشتر در هم فرو می رفت. صدای خنده های آنها با وجود معذب و قیافه درهم همه من که هیچ جوری نمی توانستم معمولی و بی نشانش بدهم نه هم عجیبی داشت. مدام به خودم برای اینکه آمده بودم بد و بیراه می گفتم. خوب شد. خیالت راحت شد. دیدی چطوری انگار توی یه دیواری ندیده گرفتت؟ خوب خودتو سنگ رو گخ کردی. بیچاره. مثل یه وصله نا هم رنگ دیگه هیچ وقت توی این جمع روفو نمیشی. اومدی اینجا یه چی؟ که ازش توجه و اتناک گدایی کنی؟ قرق این افکار آور بودم که یک دفعه مرتزا گفت. راستی محنوز خانم تبریک، شنیدم کودک باز کردی؟ فرزانه ادامه داد. واقعا کار خوبیه، هم شغل خوبیه، هم محیط خوبی داره، نه؟ شاید مرتزا هم با دیدن قیافه درهم من خواسته بود مرا از آن حالت در بیاورد و خبر نداشت و از اینجوری خرابتر می شود. چون یک دفعه همه ساکت شدند و حواس متوجه ما شد. تمام نیرویم رو به کار می بردم که صدایم نلرزد و سنجیده و آرام و درست جواب بدهم. سرم را تکان دادم و گفتم اه خب... اه اگه آدم بچه ها رو دوست داشته باشه بله کار خوبیه. منتها کار من اونجا بیشتر کار دفتریه. مریم بیشتر از من با بچه ها سر و کار داره. محمد به جای من از مادر پرسید. همون مریم مهدوی مادر جون. وای خدا انگار خانه را توی سرم کوبیدند جلوی چشمهایی همه چرا از مادر پرسید؟ چرا از من نمی پرسید؟ می که همه به ماست. می همه بفهمند اوست که دلش نمیخواهد با من هم کلام شود. از حرص و قصه و لجبازی داشتم خفه می شدم. با خود گفتم شاید پشیمان شده که هشت سال پیش هم نگذاشته دیگران بفهمند او بوده که مرا نخواسته و حالا میخواهد تلافی کند. زجری که به خودم داد و پیش خودم در تنهایی کشیدم کم بوده که حالا میخواهد تمام و کمال خوردم کند. حرس همراه حجوم فکرهای مختلف داشت اعصابم را از کنترل خارج میکرد. بعد از این همه سال زجر، این همه سال انتظار تلخ، حالا حقم این بود. بدبخت، خوب شد. دوباره خوب لگد مالت کرد. خیالت راحت شد. برای چی اومدی؟ اینجا چه کار داری؟ این همه زجر را برای چی میگشی؟ خودم هم نفهمیدم چه شد وقتی به خود آمدم که سر پا ایستاده بودم و میگفتم با اجازه فرزان جون آقا مرتزا من چند تا کار عقب افتاده دارم باید برم یک سکوت شد فرزان و مرتزا با تهیور گفتند چی؟ الان؟ ناهار نخورده؟ مادر و امیر هم با ناراحتی گفتند کجا؟ در جواب مرتضا و زنش گفتم به خودم مامان می صبحم اگه به شما قول نداده بودم نمیومدم وظیفم بود بیام ببینمتون که موفق شدم بعد با نگاهی که به مادر و امیر کردم به آنها فهماندم که دوباره آن روی سگیم بالا آمده تا دیگر اصرار نکنند امیر با ناراحتی گفت خیلی خوب سبکم می میرسونمت. نه امیر جان خودم میتونم برم نه سب کن سر زهره. مگه روزهای دیگه کسی منو میرسونه سر کار. خودم میرم. بعد رو به همه یک خدافزی دسته جمعی کردم و برگشتم بروم که ناگهان شنیدم. امیر تو باش. من میرم. غیر ممکن بود. محمد بود. نفسم بند آمد. حتی جرعت نکردم رویم رو برگردانم. سکوت ناگهانی همه وزنرا را خیم تر کرد. محمد به مادر گفت: « مادر جون با اجازه من مهنوز خانممو میرسونم میرم خونه قرار یه کتاب بر امیر بیارم. برمیدارم و میام. تفلک مادرم نمیدانست چه بگوید؟ و امیر بدتر از مادر. من در حالی که سعی می کردم سهر را که سفت به گردنم چسبیده بود و گریه میکرد به امیر بدهم. با حرسی که تلاش میکردم مخفی کنم گفتم. خیلی ممنون خودم میرم. محمد خیلی جدی گفت. گفتم که کار دارم. لجم گرفت. کار من آدم نبودم یا در مورد کنیزش حرف میزد. سهر را به امیر دادم و همونطور که دوباره خداحفظی میکردم بدون اینکه نگاهش کنم گفتم. شما به کارتون برسیم من خودم میرم. خداافظ از خانه بیرون آمدم چه اوزایی شده بود همه در سکوت حوااسشان به ما بود اما محمد صبر نکرد گفت با اجازه فعلا خداافظ در تو به سرعت دنبال من که داشتم با قدم هایی که به دویدن بیشتر شباهت داشت میرفتم دوید صبر کن کارت دارم. جواب ندادم دوباره آن را ی لعنتی برگشته بود با خود میگفتم خدا کند نیاید خدایا اگر دوباره حالم با هم بخورد چه کار داشت به اندازه یه کافی خوردم کرده بود دیگر چی میخواست توی کوچه در حالی که یکی دو قدم بیشتر با هم فاصله نداشتیم با لحنی محکم که برای من گزنده و تلخ بود گفت گفتم سب کن باهات کار دارم ایستادم ولی پرنگشتم، نمیتوانستم با او روبرو شفم، دستایم را مش کرده بودم، بلکه لرزه تنم شود. همونطور که کنارم ایستاد، بدون اینکه نگاهم نگاه هم کند، گفت. ماشین من اونجاست. گفتم که خودم میتونم برم. منم گفتم که با کار دارم. چرا اینطور حرف میزد؟ چرا چون این با تحکم و سرد دستور میداد و رفتار میکرد؟ با حرص گفتم ولی من با شما کاری ندارم. از کنارش که در ماشین را باز کرده بود گذشتم. آستین لباسم را گرفت. نه با ملایمت با عصبانیت مرا به طرف عقب کشید. گفتم با کار دارم. سوار شو. میتونی بفهمی یا نه؟ بافر نمی کردم. احانت از این بیشتر. این همان محمد آرام بود. اصلا چه حقی داشت با من اینطور رفتار کند من را به هیچ میگرفت آخر به چه حقی خواستم چیزی بگویم ولی تقریبا به زور مرا سوار ماشین کرد و در را بست دوباره احساس آن روزی که توی گوشم زده بود پیدا کردم احساس خفیف شدن احساس خاری و شکستگی و هیچ شدن آن موقع مستحق این رفتار بودم ولی حالا چه؟ بغز گلویم را گرفت بغزی که سمره هشت سال رنج و عذاب شبان روزی بود بغزی که هشت سال قرد داده بودم و حالا با این رفتارش باعث می شد که خفم کند صدایم به فریاد بلند شد و خودم هم نفهمیدم چه شد که اقده هشت سالم را با کینه و قیز و نفرت بیرون ریختم. چی کار داری؟ از جون من دیگه چی میخوای؟ بعد از این چند سال اومدی که دوباره منو خورد و له کنی و بری که به دیگران چی رو بفهمونی خیال میکنی نمیدونم برای چی دوباره خاصی با امیرینا رابطه برقرار کنی حاجو واج مانده بود و با چشمهایی که از قذب به سرخی میزد گفت من از جون تو چی میخوام؟ من تو رو خورد کردم؟ تو رو خدا بس کن نزا فکر کنم هنوز عقلت نمیرسه بعد با زهر خندی تلخ اضافه کرد در تعجبم برای فراموش کردن اون تجربه تلخ چطور تا حالا ازدواج نکردین؟ اگه نتوانستم طاقت بیاورم، حرفش را بریدم، احساس کردم مسخره هم می مخصوصا با حرف آخرش کاملا از کوره در رفتم با همه ی توانم فریاد زدم، فریاد زدم تا عشقهایم را کنار بزنم داری اعتراف میکنی که فکر میکردی عقلم نمیره ساره؟ اشتباه میکنی. هم اون موقع عقلم رسید هم حالا خیلی خوب هم عقلم میرسه اینقدر که از همه مردان نفرت داشته باشم اینقدر که بفهمم مرد فقط اسمی از مرد دارن یه مش نامردن که فقط و فقط حرف میزنن دروغ میگن بهت قول دروغ میدن و بعد زیر قولشون میزنن اینقدر عقلم میرسه که از تو از گذشتهم و از هرچی مرد متنفر باشم در ماشین را باز کردم و پیاده شدم و سوار اولین ماشینی که میگذشت شدم. در حالی که او مبهوت سر چایش خوشگش زده و به من خیره مانده بود. عشقهایم چنان سرازیر شده بود که از راننده که با تعجب از توی آینه نگاه هم می خجالت میکشیدم. خدایا چه کار کرده بودم؟ برای اینکه مرا پس نزده باشد؟ برای اینکه دوباره تغییر نشوم برای اینکه میترسیدم دوباره خفیفم کند تمام خشمم را از بی و و تمام رنجی که این چند سال کشیده بودم توی صورتش کوبیده بودم و درد کشیدم. خیلی سخت است که آدم با دست خود قلبش را به لجن بکشد و دور بیندازد فقط برای اینکه بر دیگری پیشی بگیرد من از سر ترس تمام دردم را به صورت نفرت بیرون ریخته بودم و حالا پشیمان بودم. چرا؟ نمیدانستم. با خود می گفتم مگه ندیدی چطور ندیدت می گرفت؟ مگه و توی حرف زدن و رفتارش ندیدی؟ پس چرا از اینکه به اون نیش زده بودم به جای احساس آرامش رنج می بردم و درد می آخه احمق چرا لاغل سم نگردی ببینی چه کار داره؟ تو که هشت سال سب کرده بودی ده دقیقم روش نمی که که وقتهایی هست که دنیا با همه بزرگی برای آدم مثل قبری تاریک و تنگ می شود و همه هوای دنیا جلوی خفگی آدم را نمیگیرد آن روز برای من از آن وقتها بود خدایا اصلا چه لزومی داشت دوباره من و او با هم رو شویم چه حکمتی چه مسلحتی توی این برخورده دوباره بود، غیر از روح فرسوده من؟ پس این سرطانی که مثل خوره جان من را می‌خورد، کی می‌خواید تمام کنی؟ بی خرار و ناآرام به خانه رسیدم، در حالی که هنوز عشقهایم مثل باران جاری بود. بعد از سالها دوباره چشم اشکم روان شده بود. خدایا چه کنم؟ صدای ازان بلند شد و مرا بی اختیار به سمت پنجره کشند. نمیدانم در وجودم چه ارتباطی بین از و آسمان هست که وقتی صدای از آن را می شنوم دوست دارم آسمان را هم ببینم. صدای از توی آن ظهر خلوت جمعه و سکوت محیط و نگاه به آسمان آبی و فراخ قلبم را بی از آنکه بود کرد. حق هق, هق کنان و از ته دل زار زدم و انقدر اشک ریختم که احساس کردم آرام آرام آخرین قوای بدنم هم تحلیل می رود. با حال زار رفتم سراغ قرص های میدم و بعد از سر زف دراز کشیدم و نفهمیدم که با چشمانی خیس از اشک خوابم برد گاهی آدم حاضر است هرچه دارد بدهد تا فقط چند ساعت بی و رها از قید چیزهایی که آزارش میدهد در سکوتی محض آرامش بگیرد همان است که خواب به داد آدم میرسد و اگر مثل علاج کامل نباشد لااقل مثل مسکنی قوی دردها را در زمان حال از آدم دور میکند آن روز خواب برای من با همهٔ این اینطور بود فراموشی و فرار از زمان حال